حکایت توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیک گفتندش گفتندش آن است که ختم قرآنی کنی از بهره وی یا بذل قربانی. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت مصحف محجور اولاتر است که گله دور. صاحب دلی بشنید و گفت ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان. دریغا گردن طاعت نهادن، گرش همراه بودی دست دادن، به دیناری چوخر در گل بمانند، و رلحمدی بخواهی صد بخانه.